مادرجان فرودگاه مهرآباد زمستان شست بود پرواز تهران استانبول تأخیر داشت و حامد میرفت نیویورک انگار توی ترمینال پروازهای خارجی جز ما چهان نفر کس دیگری نبود ما سه نفر پدر حامد هم انگار نبود و فقط من و حامد و مادرجان بودیم با چادر سیاه و عینک آفتابی لابط خیلی خنده دارتر شده بودم. از پشت شیشه های گیت آنها را می دیدم. انگار حامد هم انتظار داشت من را ببیند. بیتاب بود. بیان که حواسش باشد، پاش خورد به چمدان سیاه کنار پاش و خورد زمین. میخواستم بروم سمتش و از روی زمین بلندش کنم. مادرجان به حامد گفته بود میخواهی با اون دختره چادری ازدواج کنی دایی‌های گاردیت اعدام شدن که تو این کاره بشوی توف ورود یا من یا این دختری قربتی حامد اینها را روز قبل از پروازش به من گفت از ادامه تحصیل در آمریکا به من چیزی نگفته بود پنهانش کرده بود شاید دو دل بود و نمیدانست باید برود امریکا یا نه. حامد هم نمیدانست آخر بازی من چه می شود. مادرجانش را دوست داشت. میدانستم که در مسابقه مادرجان و من مادرجان برنده می شود. نگذاشتم مسابقه شروع بشود. خودم داوطلبانه کنار کشیدم. ما به هم نمیاییم حامد. این رابطه از اولش اشتباه بوده. اشتباه بچه کانه. در گلوی حامد سنگینی می کرد. پس من می جبهه. جبه. خندم گرفته بود. شهید؟ آن هم تو؟ حالا می بینی. و رفته بود جبه. آن هم چه جبهی. نیویورک سیتی. لابد با خودش گفته بود، پدر بزرگ لیلا عضو حیعت امنای حسینیه ارشاد است و لیلا را هم توی جلسات تفسیر نحجل بلاغه دیدم. پس لیلا حتما از شاهد خوشش میآید. آید. دیست سال بیشتر نبود. حامد دانشگاه نرفته بود. می گفت مادرم دانشگاه اینجا را قبول ندارد. می دانست در آن سالهای بگیر و ببند باید چیزهایی را که توی خانوادش می گذارد. از چشم دیگران پنهان کند. مادرجان شاه دوست بود و زخم خورده از انقلاب. انقلاب برادرانش را از او گرفته بود و او همه چیز را حق و ناحق زیر سر چادری ها از همه مظاهر انقلاب تا آنجا که فهمیدم فقط روی همین یکی حساسیت داشت. حساسیتی در حد نفرت. شبی که نفهمیدیم از کجا بو برده بود و حامد را تعقیب کرده بود، سیل آمد. سیل بزرگ دربند. ما توی سیل گیر کرده بودیم و مادرجان هر دومان را سوار کرده بود. میدیدم که از آینه جلو چطور مرا چپ چپ نگاه می کند. بیان که بخواهم یا تلاشی بکنم، قاپ پسرش را دستیده بودم. حامد توی ماشین ساکت بود، میدانست افتضاح بار آورده و قضیه ای که باید تا مدتها پنهان می مانده خیلی ناشیانه رو شده. سیل دربند به شریعتی هم رسیده بود. حسینیه ای ارشاد عین جزیره‌ای سرگردان میان آب بود. خام قبل از اینکه بپرد و برود به هم گفت: مادر جانش وقتی فهمیده هوس جبهه و جنگ توی سر بچش است. به آب و آتش زده و برایش به خاطر تاریخ زیاد کف دستش از کمیسیون پزشکی معافیت گرفته. میدانستم حامد توی سرش چیزهای دیگری است. جبهه بهانه بود برای امتحان من. میدانستم که در آن امتحان هر دو دومان مردود میشویم. حامد رو دوست داشتم ولی از عاقبت کارمان میترسیدم. بابا بزرگ اللهی من و خانواده شاهی حامد. نه، فکرش را هم نکن. و حامد به همین سادگی داشت میپرید و پرواز استانبول آماده بود. حامد مادر جانش رو بوسیده بود. یک بار دیگر دروبرش را نگاه کرده بود و از پله برقی ترمینال دو بالا رفته بود. چند ماه بعد، در یکی از نامه هایی که برایم نوشت، ماجرای رفتنش را توضیح داد. خاله نیویورک، گرین کارت خانوادیک. معذرت خواسته بود که اینها را به من نگفته. من باید چه می کردم؟ می زدم زیر همه چیز را می رفتم دنبال حامد نیویورک؟ نه، بهتر از فراموشش کنی. نمی توانستم این را برایش بنویسم. دلم نمی آمد. پس جواب نامه هاش را نداده بودم. حامد هم کم کم انگار از تک و دو افتاده بود و برایم نامه ننوشته بود. باران تمام شد و من دانشگاه الهیات را نصف نیمه ول کردم و شروع کردم درس خواندن برای کنکور هنر. دوباره دانشگاه تهران قبول شدم و این بار عکاسی درست مثل حامد میخواستم از رای هنر شبیه حامد بشوم. میخواستم فاصله بینمان را کم کنم. ولی عکاسی هم چرای کار نبود. هم درس میخاندم، هم نمیخاندم. هم عکس میگرفتم، هم نمیگرفتم. توی اوالم خودم بودم. به خیابان پناه برده بودم. خیابانهای اطراف دانشگاه تهران. دیر به دیر خانه می رفتم و مجید، سرکلی مجید هم توی زندگیم پیدا شده بود. داشتم روی هوا برای یک مرد دیگر در زندگیم جاوا می کردم. آمد خواستگاریم و زود از من و پدر جواب مثبت گرفت و خیلی زود هم مثلا رفتیم سر خانه و زندگی خودمان. خانواده مجید رو پذیرفته بود، ولی من نه، چرا؟ این دیوانگی محض از دختر، هنوز یک سال نگذشته بود که به مجد گفتم طلاق میخواهم حیرت زده نگاه هم کرد، طلاق برای چی؟ خودم هم نمی دانستم. حامد، حامد که آن سر دنیا بود و حتی به نامه هاش هم جواب درست نداده بودم، نه هیچ مردی، که هیچ چیز دیگری هم در زندگیم نبود و با یک بچه توی شکمم طلاق میخواستم خوبیش این بود که مجید هم بچه نمیخواست لابد میخواست بعد از من زندگی مطلقا جدیدی را شروع کند اما نخواستنش را رو نکرد شاید از مهریه میترسید خیالش را راحت کردم مهریه نمیخواهم عادلانه بود خبر در خانواده پیچید و من ترد شدم برای همیشه. خودم هم از طرد شدم بدم نمیآمد. چشمهای مادرجان که از آینه شفرولت من رو میپایید جلوی چشمهام بود. آن چشمها توی کابوسهای بعد از سخت جنین دست از سرم بر نمی‌داشتند. من کاری به پسرت ندارم. دست از سرم بردار. تهران شب از جایی که پسرت زندگی می کند حالا لنگ ظهر است من تا به حال به نامه های پسرت جواب ندادم چرا راحتم هم گذاری؟ برادرانت اعدام شدند به من چه مربوط ببین مانتو سفید و صورتی میپوشم برای خودم یک خانه کوچک توی توانی رجاره کردم و شوهرم را هم طلاق دادم به خدا طلاق مجید ربطی به حامد ندارد از خوابهای من برو بیرون اصلا جاوید شاه جاوید شاهنشاه کذایی مدوم از پنجره حال ماشین حامد را میبینم که می پیچد توی خیابان فرعی. راه بند آمده است. دو ماشین از سمت دیگر خیابان ورود ممنوع آمدند و خیابان قفل شده است. آپارتمان من واحد جنوبی طبقه چارم است. از این بالا میتوانم خیابان فرعی را در یک خط راست ببینم. از مجتمع خودمان که آخر خیابان است، تا آن میدان کوچک. عمر خیابان وقت رسیدن به میدان تمام می شود. از میدان متنفرم. خیلی تراژیک است که عمر بعضی از خیابانها، مثل خیابان فرعی من به این کوتاهی است. عادلانه است به هر حال. حتی خیابان بلند هم بالاخره یک جایی به میدان می رسند. میدان ها همیشه زنده میمانند. میدان ها جان دادن خیابان ها را میبینند و پوست خند میزنند و زنده میمانند. میدان مادر. امروز انگار باز دو سر یک حلقه یه ده ساله به هم میرسند. انگار قرار است حامد را امروز باز بعد از ده سال ببینم. مثل دماه ه شش و میدان مادر محباره قرمز رنگ روی میز شیشه حال نیمه باز است هندی ها به زندگی قبلی چه میگویند؟ به زندگی بعدی چه؟ لیلا جاهد تو هنوز تمام و کمال مادر نشده ای و به زندگی بعدیت عادت نکرده ای. میدان مادر، نمایشگاه عکس حامد نجات، همه ی بلندی های شهر. پسترش را نزدیک میدان انقلاب روی شیشه شیرینی فرانسه دیدم. اشکم سرازیر شد. فکر می کردم حامد را فراموش کردم. ده سال گذشته بود. حامد تهران چه کار می کند؟ بلندی های شهر؟ نیویورک پس چی؟ ینگه دنیا و مذاقش سازگار نبوده که برگشته؟ حامد شرق زده نیویورک را ول کرده یا آمده ای این شهر جهان سومی که چی را ثابت کنی؟ شاید این حامد نجات آن حامد نجات نباشد ولی مگر چند عکاس اسمشان حامد نجات است خیابان انقلاب مهربان تنها تو را می‌پرستم و تنها از تو یاری می‌جویم به راه راست هدایتم فرما همان حامد نجات هست یا نه بروم نمایشگاهش یا نه من را به خاطر میآورد یا نه ولش کن دنبال دردسر نمی‌گردم آدم نباید به گزشته ها برگردد ها استخان آدم را پوک می کند و باعث می‌شوند قلب آدم تیر بکشد. قلب درست و حسابی ندارم، دنبال حیجان کاذب هم می‌گردم. خانم جاهد، پات را توی آن نمایشگاه ها. فهمیدی چه گفتم؟ یا دوباره تکرار کنم؟ ولی من پام را توی نمایشگاه گذاشتم. آن روز از خیابان توانیر تا خیابان میرداماد پیاده رفتم. میدان مادر. مادرجان دوباره چشم تو چشم من بود. میترسیدم. یعنی مادرجان هم به نمایشگاه حامد می آید. میآید مگر می شود روز افتتاهی مادرش نباشد. آن هم حامد که مادرجانش برایش مثل دریچه های قلبش است. با هم شده بودند شک و تردید به جانم افتاده بود برو لیلا آخرش چه میخواهد بشود؟ مادرش از آن زنهایی نیست که داد و جنجال را بیاندازد چند نگاه چپ و تخی بهت می کند و بعد می رود با دوستهاش یه گوشه میشونند و زودی هم با دوستهاش از گالری می رود بیرون اصلا از کجا معلوم تو رو بشناسدطوره که فقط یک بار آن هم خیس و موش آب کشیده وسط سیل دربند دیده. تازه آن هم بیشتر از توی آینه ماشی. غیر از این، توی این ده سال تو خیلی عوض شده ای. زرد و نارنجی و این انگشترهای عجیب و غریب که یکی در میان توی انگوشتها تا انداخته ای. برو لیلا، آدم باید با سرنوش روبرو بشود. میدان مادر خیابان بهروز گالریه خیابان میرداماد خیابان خوبی برای میاد دوباره نیست. حامد نمیبینی میدان مادر چقدر به حسینیه ارشاد نزدیک است. نزدیک بود سیل ما را ببرد. یادت است باران با چه شدتی میبارید و مردم چقدر وحشت زده و سراسیمه بودند. میخواهم اعتراف کنم. آن روز توی دلم میخواستم دستات را بگیرم. میتوانستیم برگردیم توی حسینیه یا برویم زیر یک سقف. اما اصرار داشتیم زیر باران بمانیم و سعی کنیم با خونسردی و متانت درباره باره یه حرف بزنیم. راستی حامد، تو چطوری از حسینیه سر درآوردی؟ همه صحنه ها و سوالهای بی جواب ده سال پیش مثل سیل توی مغزم سرازیر می شد. مستقیم میدان مادر! پیکان آبی کمرنگ جلوتر از من زد روی ترمز. من صندلی عقب نشستم و دستگل بزرگ روز سورتی را هم کنارم نشاندم. لطفاً کس دیگری را سوار نکنید. راننده از آینه نگاهم کردم. مادر جان شیشه اقعب دستگیری بالابر نداشت می شود دسته بالابر را بدهی شیشه را پایین بیاورم نفسم گرفته راننده دسته را داده بود و لابود با خودش گفته بود به خاطر این فیفی خانم باید سر ماه هم بخورن. فقط شیشه را زیاد پایین نیاورید از روی پل میردامات رد شدیم همه لحظه های آن روز مثل یک سنگ نوشته توی مغزم حک شده ترافیک روی پل سنگین بود اتوبان زیر پامان هم زمستان ها هنوز هم سود شب می شود.